كم فاطمه جون چطور خير عزيزم خوبي؟ خيلي شما خوب هستی؟ خوبم. الان دارم ضابط ميكنم. ضابط یه نمونه خوب الان ميخوام ضابط ميكنم الان فعلا واقعا دارم ضابط میکنم، و هز... قبل هاز قبل از هرچی، هرچي بلن ازتون تشکر کنم، چون تو موافقت کردی برای ضبط این ویدیو و بخشش داخل سایتمون مکالمه عربی خیلی ممنونم خواره عزیز فاطمه جون. خوش میکنم البته موافقی درسته؟ بله بله ممنونم هستم زنده باشید خب باش اولا میخوام نظرت تو چیه؟ قابط سایتمون زبانه برای گرفته زبان مکالم عربی مکالمه عربی مکالمعربی.com نظرتون چی بخش عربی بود، چی بخش فارسی بود؟ بفرمون من توی سایتا که رفتم بله؟ چند تا خوب داشت یکیش این بود که کامل توضیح داده بودین حالا چه از قیمت جلسه گرفته بود که آقا مثلا اینقدر میشه، اینقدر تخفیف داره در مورد کوپونا صحبت کرده بودید کاملا شفاف سازی شده بود لازم نیست از آدم بخواد به یه جایی زنگ بزنه به بپرسه یا یه کار دیگه بکنه چون همه اینه از آدم وقت میگیره این یه مسئله خوب که من دیدم یک مورد دیگه این که به حضورتون توی خود سایت یه سری چیز بود مثل حالا یه سری سایت ها دارم مثلا مثل سایت خود دانشکات مثلا میگه انقدر دانشان مخته دارم انقدر من اساتید هیئت علمی دارم انقدر الان دانشجو دارم یه همچین چیزهای خوب خیلی خوبه یعنی یه ایده جدیدیه هنوز زیاد من ندیدم توی سایت ها این هم یک مسئله و یه, یه مسئله دیگه که بود ارزم به حضورتون سایتتون این بود که خب حالا داخلش اینکه در مورد اینکه حالا دیگران چه گفتن ما چی میگیم کامل اینا صحبت شده بود و خلاصه که کامل مثلا میشد مشخص کنی که آقا من با استاد مثلا رافی ادم میخوام کلاس بذارم یا بقیه استادا قابلیات انتخاب و چیزای دیگه بود برای من کلا یه چیز جدیدی بود احساس میکنم یک تحولیه و خب ولی البته هنوز جا داره که کامل تر میشه توی فکر هم سایت فارسیش باید هنوز یکم کامل بشه درسته بعد درسته. و همین دیگه احساس اگر مثلا اسم اساتید دیگر رو بیارید اون خیلی بهتره اونا هنوز نبودن این درسته. یک مقدار اپهام برای مخاطب خوب بقیه کیان پس طریع همه میان سمت این که بیان سمت شما و فکر می‌کنم چون شما محدودیت داری خب بعد یه سری از اساتید دیگه رو حالا بیوگرافی بذاری عکسای خودتون خوب بودن توی چیز که در مورد موضوعات مختلف لحجه های مختلف گذاشته بودید آموزش و اینا اینا خیلی تاثیر داشت توی های مختلف شکل و شمایل مختلفی داشتید و حالا یه سری این چنین مسائ من دیگه چیز ندارم بگم کاملا درسته درست دارم انجام انجام یا یواشواش قدم بقدم کاملا درسته بریم این شایلا که کامل بشه و صد درصد خب دیگه چی نقاط مثبتی دیدی داخل سعتمون چی بخش عربی بود چی بخش فارسی بود نقاط مثبت اینکه آهان پرداختتون توی اون عنوانی که داخل سایت زده بودید یا حالا توی سایت عربی که با یعنی چیز سایت جهانی میشه یعنی باید پرداختشون با پول جهانیه بلی. و اینکه دارین توضیح میدین و اینا یه چیز جذابیه یعنی مخاطب میگه یعنی چی ما دیجیتالی... آره ارز دیجیتال داند. داند. همون بعد چون مرسوم نیستش درسته. و ممکنم مخاطب خب یک مقدار چیز داشته باشه نسبت بهش ترس داشته باشه ولی خب به نظر اون عنوان خیلی جالبی بود اینکه حالا داریم چون دنیا داره به این سمت میره که داره با ارز جهانی و ارز دیجیتال داره کار درسته. میکنه اینکه دارین توش پیشگام هستین خب این هم یه نکته مثبت دیگه هستش و همینه دیگه این سایتتونم چیز داشت حالا سایت که هم داریم برای کتاب که اون خب خیلی چیزایی که حالا خیلی توش رایگان هن. خیلی داخلش دقیقاً اکثریت آره رایگان هستن. بیشتر از دمت بیشتر از دمت دقیق خودش رایگانه بله دقیقاً بعد زبان‌های مختلف داشت خیلی جالب بود زبونای مختلف که میتونستی انتخاب کنی به فارسی عربی کل زبونا میامدن یک کتاب کاملی بود یعنی بعد اینم چیز خیلی جالبی بود چون من دیده بودم سایت هایی که عربی تدریس میکنن به خاطر اینکه حالا عربی تدریس بکنن یه سری از کتابهایی که مربوط به مکالمه را میشن میذارن داخلش خیلیم شاید خوبی هستن ولی خب این یه چیزی فراتر از این قضیه بود که اصلا طرف ممکن اصلا بتونه راحت از این استفاده بکنه ممکن اصلا که شما کلاس مکالمه هم نی یه, یه جوری انگار زکاته حالا اون علم یا اون اینکه شما تیمی دارین دارین اونا رو جمع آوری کردین که این این کتابخونه گرده هم بیاد آره این شکلی که چه شما خیلی راحت طرف میتونه بیاد دانلود کنه رایگان استفاده بکنه چه حالا بتونه کتابهایی اصلا که حالا هزینه بخواد داشته باشه اون رو پرداخت میکنه و خوب مطالعه میکنه قضیه کتابم خیلی چیز جالبی بود بعد میتونن خب حالا با استفاده از گوگل ترجمه کنن کسی که خب مسلط نیستم زبان درست کتاب کتاب به عربی اون عنوانش و حالا اطلاعات مربوط به اونو اه, اون قسمت گوگل ترنسلیت داره خب چون مثلا من ممکن روی پوشیم گوگل ترنسلیت داشته باشم خودش ناخودآگاه برام اونو ترجمه کنه ولی کسی که نداشته باشه خب نمیفهمه ولی خب این هم چیز خوبیه ولی خب اه, یه مقدار چون گوگل ترنسلیت توی زبان عربی اه, حالا به خاطر اون حرکاتش یه مقدار گایی اوقات اشتباه ترجم میکنه که این هم که ربطی به سایت نداره یعنی یه ده چیزی ده. که شما کلا به زبان مربوط زبان انگلیسی خیلی راحت تر ترجمه میشه این حرکاتش این شکلی هستش و خلاص من توی تایم کمی که رفتم داخل سایتاتون خیلی برام موارد جالب بود و خیلی احساس بکنم پر از ایده های چه اینکه که به زبان ساده توضیح دادید چه اینکه کاملا، در مورد خودتون بیوگرافیتون و مجموعاتون که دارا چه کاری میکنه توضیح دادید کتاب خونه منظر من خیلی پاهم مثبتیه برای کسایی که دنبال حالا این کتابها ها بودن چون خیلی سخت دادم فقط گای اوقات با یه سرچ کردن توی گوگل پیدا نمیشه بعد خب یه سری کتاب ممکنه چاپ مختلفی داشته باشند که گیر بیاری چاپ اصلیش رو نسخه اصلیش رو این همه کلی زمان میبره و خب وقتی که یعنی توی مجموعه ای داشته باشی کاملا سرچ بکنی و بتونی اون کتاب رو دریافت بکنی خیلی پوان مثبتیه مثلا یه کتاب خیلی چیز که هستش تاج عروس خب این کتاب خیلی بله. چه این, این نسخه کامل بله بله نسخه کاملش گذاشته بودین داخل سایت همیشه رایگان رایگانه رایگانه از, انتشار رایگانه از انتشار نسخه اصلیشم گذاشته بودین خیلی بوانه بله. مثبتی بود که بتونی گیر بیاری چون بعضا وقات گیر نمیاد حتی فیلم ساده که میخوای چیز بکنی ممکنه ازشی زده باشن این شکلی باشه کامل نباشه خصوصا این کتابایی که انقدر قطورن انقدر چیزن که ممکنه یه بخشیش گذاشته شده باشه به خاطرش مثلا پول بدی این کتاب ها معملا که انقدر بزرگن و چندجلدین خب این همه هزینه دارن که خب خیلی خوبه طرف بتونه رایگان بگشت واقعا هزینهشون خیلی زیادن و توان پرداخت ندارن بعضی این شکلی. درسته کاملا درست گفتی؟ بله؟ خب تا الان از بنده از خودم از رفاعد هاشمی راجب زبان عربی چی یادی گرفتی؟ جب. من در مورد زبان عربی یه سری چیزها رو خونده بودم جب. که کاملا اشتباه بودن اونها رو اصلاح کردم من با شما تفاوت های حالات راب و حرکات تراب رو خوندم که, فکر... که بعضا فکر بکنن که یکیه که نیستش این شکلی من آواشناسی بهش میگن توی گروه ادبیات عرب کسایی که کارشناسی خونده باشن میدونن این رو ولی باز هم به این شکل کامل چیز نبود که شما کاملا اصولی و علمی گفتین که دقیقا هر حرکت باید از کجای حلق درسته. حالا این واجهی که من به کار میبرم حلق در زبان فارسی که حالا توی عربی بهش میگیم بل اینها, اینها مترادفه هم نیستن ولی خب ما نداریم در لغت فارسی نزدیک ترین واجهی که میتونیم مش بگیم حلقه اینکه که مخارج حروف رو یاد گرفتیم یه سری ارزم به حضورتون اشتباهات و ارادت خود من بود توی خانش اونها اصلاح شد اه، و ارزم به حضورتون که حرکات حالات راب اه، اه، که تفاوت موصوف و صفت خوندیم مضاف و مضافون چه شکلی میشه که یک واژه‌ای نکره ها رو خوندیم معرفه ها رو خوندیم اینکه هر معرفه ای با ت... هر چیزی که تعریف بگیره معرفه است سخن دیگران هستش علما زبان عربی این رو شما من گفتیم که اشتباهه خیلی چیزها رو که کتاب داریم اشتباه میبینیم که باید منسوب باشه ولی گذاشتن مثلا مجرور و هیچ توضیح هم ندادن هر چیزی رو باید یک توضیح براش داشته باشیم و من از شما در کل آموختم که هیچ چیزی رو بدون هیچ سند و مدرکی نباید قبول بکنی و باید دلیل داشته باشی واسه بیشتر پیروه اشتباهات خودم بوده اینکه بدونیم که لفظ چیه توی کتابتون توی انتشارات جوهرالخرائت ما یه مبحثی داشتیم تفاوت لع... یعنی لفظ چیه شما میگین که لفظ لحوسوتن معنان یعنی یک چیزی که یک معنایی داره اشتباهم رو از علمای زبان عربی میگن لفظ همون کلم هست اشتبای کلمه یک چیزی که مرکبه آه. یعنی مثلا من توی فارسی میتونم بگم مداد پاک کن این یک کلمه یه که آه. ترکیبی از سه تا حالا چیزه که هر کدوم از اینها یک معنا داره حالا من توی فارسی مثلا این رو مثال میزنم ولی چیزی که توی زبان عربی این باعث اختلافات هم شده این مسئله بعثاً حتی باعث سوء فهم چه در حالا احادیث چه حتی در قرآن کریم چون تف... ترجمه متفاوت درسته بله. به ما سو فهم رو میده چون وقتی لفظ که داریم میگیم یه صوتیه که معنا داره وقتی اش... اشتباهن معنا بشه طبیعتا ما تفاوت ترجمه رو داریم و تفاوت اینکه بتونیم داخلش چیز بکنیم یک معنای درستی بله. من خودم برانهای مختلف رو که نگاه میکنم ممکنه ماهیت اصلی یک چیزی باشه شاید یک آیه ای من رسیدم به قرآن دیدم آقا مثلا پنج معنی مختلف رو برای این آیه نوشته بودم و من واقعا دقیقاً ندونستم که کدوم یکیش درسته کدوم یکیش چیه بعضا بعضی ها تحت و لفظی بعضی اون چیزی که ساخته چیز خودشون بوده درسته بله بحثمون سر این نیستش که قرآن به این شکل چیز شده. بس اینه که حالا این اساتیدی که دارن ترجمه میکنن که اونها هم تقصیری ندارن بیشتر به خاطر کشینیان خودش هیچ تقصیر ندارن هیچ تقصیر ندن قرار این بلی. چیزی بوده که عمدی نبوده این مسئله ولی خب به هر حال حتی توی ازمان من یاد دادین که اه، اه، تنوین ها او اون ا این و اینها دقیقا. تنوین کسر تنوین زمه و تنوین فتحه هر کدوم از اینها یک معنایی دارن تا سرگزاریشون تصیر پذیریشون مثلا اینکه ما ما می میگیم توی اعظان میگیم الله و اکبر نوزو بالله ما داریم یعنی یک صفت رو داریم به خدا میگیم یعنی میگیم خدا بزرگ بود قطع شد دیگه بزرگ بودن خدا تموم شد افره افره. از این که این رو به کار میبرن یا اگر بدونن که دارن برای سهولت این کار رو میکنن خب ایراد نیست ولی اگر ندونن اگر تعمدی این کار رو بکنن که خب بر اونا خیلی ایراده و اگر حالا عرض روی سهلنگاری باشه یا اینکه که نمیدونن واقعا چون خیلی ها این مسئله رو نمیدونن که آقا مثلا تنوین خود زمه مثلا بگیم الله و یا مثلا چون دارم کتابون مثلا اکبرون یا هر چیز دیگه ای که تنوین زمه داشته باشه یعنی اون اثرش تا هست روی مخاطب و اون اثر اون حالا لفظ نمیگم کلمه چون ممکن نباشه کلمه اون هیچوقت از بین نمیره یعنی همیشه بوده و همیشه هست این شکلیه اینها رو با شما یه سایی مباحث بوده یه سایی مبادرس عرفانی بوده که خودم دوست داشتم بدونم که با هم چیز کردیم به یاد دادید من اشتباها تصوف رو با عرفان یکی میگرفتم شما توضیحاتی رو دادید که من کاملا متوجه شدم و اینکه هر زبان آموسی در پنج مرحله میتونه تسلس برسه درسته فکر کاما من در مرحله سو میشم در مورد در آره. مورد عقل عقل الوایی و عقل الوایی به هم گفتید آمی. که حالا این عقل الوایی گفتید اه، یک عقلی که بعد چه هستش و این عقلی که بچه هستش رو باید تربیتش کنیم چون ممکنه که تأثیر بذاره روی تمام رفتارها و تمام سبک زندگی ما و عقلالوایی هم سی درصد رو تشکیل میده ولی عقلاللاوایی که همون چیز که دارم میگن بچه از و اینها حدود هفتاد درصد از مغز ما رو تشکیل میده و ارزم به حضورتون که اینها رو خوب دونستم اینکه که که به کائنات میدم چه شکلیه چه چیزی بر من بر میگرده و سعی کنیم که چیزی که به کائنات میفرستیم چیز مثبتی باشه چون اگر نباشه اون دوباره به خود ما بر میگرده و یه سری هم در مورد در زبان عربی به یاد دارید که کیلوگرم گرم اه، مثلا اه، توی فارسی ما توی عربی من همیشه بگم یه چیزی یا غلطه یا درسته ما توی عربی یه چیزی داریم مثل غلط درست و درسته, درسته. مثلا اه، کیلو گرم رو میگن کلو جرام هم میگن که کیلوجرام فکر میکنم درستتر باشه. حالا اگر... یه آره. درست گفتیم یا مثلاً این آره، این مثلاً این کلیزی میگن، این جلیزی هم میگن. درسته. خب، این کلیزیت درست تره. این درسته. که من میگن، جوجل هم میگن. هر کدوم از اینها، یعنی باید بدونیم که در کدومش میتونه اه، اه، بدونیم که واجه, استفاده واجه که ما داریم ازش استفاده میکنیم درسته یا درستتره؟ آنه خیلی با ما کمک میکنه و اینکه ما با شما هر روز مطق کار میکنیم یه بخشیش رو و من باید تصدیح بکنم مثلا امروز تکلیفمون این بوده که من یه سری جاها رو با این که نویسنده این کتاب خب طبیعتا یک از اساتید بزرگ زبان عربی هستش ولی من خودم قطعا اینو از شما یاد گرفتم که هر متنی فقط به خودم اعتماد کنم و به شما اعتماد کنم و یه سری ایرادات ازش گرفتم حالا نمیدم که درسته یا نه ولی خب احساس میکنم که بعضیش باید حتما درست باشه منطقه چیز که یاد گرفتیم نباید این شکلی باشه دیگه هم. عفरीन خیلی خیلی درسته کاملا درسته و خیلی خیلی خوب از من یاد گرفت عفरीन من بهت خیلی خیلی افتخار میکنم ها عزیزم فاطمه جان خیلی خیلی بهت افتخار میکنم عفरीन بهت زنده باشید زنده باشید زند سلامت واقعا تو خواهر گل من هستی عفरीन من ازت عزیز ممنونم ممنونم ازت ممنونم فاطمه جان و خیلی خیلی سپاسگزارم و ازد تشکر میکنم بازم تشکر میکنم تا بی نهایت ازد تونو تشکر میکنم بابت زبط این ویدیو خیلی ممنون ازد خیلی ممنونم خوش ممنونم خیلی تا جرسات بعدی بی خدا اوکی خیلی ممنونم خوش میکنس